جلسه سی و هفته قوائد فقه سیاسه و الحکومت پونزه دوازه هزار چهار سد محصره اموزشالی و زهبی امام رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رفع العالمین صلی الله علیه سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و علیه اهلویت تاهرین المعصومین سی مبادیت رفع العربین روحی و عربه العالمین له الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار السلام بحث قواعد رو شروع می کنیم. ما یک دسته‌بندی از بحث قواعد داشتیم بر اساس الگوی سگانه که بین مساله و مفاسد می توانیم تصویر کنیم اگر بر این اساس بخوام نگاه کنیم لیستی از قواعد رو ما می توانیم داشته باشیم تضاهم بین مساله یه سری از قواعد رو اختزار داره طبیعتاً قواعدی که مربوط به تضاهم این دوتا باشه بعد در اینجا مطرح بشه در واقع ما هر ای رو نمیتوانیم زیل این بحث بیاریم اگر صحبت از تضاهم بین مقصده پای مقصده در میان باشه قابل طرح در اینجا نیست در واقع دستبندی قواعد مربوطه به اهم و مهم رو ما باید در عرصه های مختلف دنبال کنیم یعنی جور نیست که حالا در تلقی رایج کنن یک جو صحبت میشه کنن یک, یک قاعده ما داریم در صورت که میتوانیم بگیم زیله عنوان اهم و مهم ما می توانیم مجموعه ای از قواعد رو از قواعد مهم و کلیدی رو شناسایی کنیم و هر کدام رو در نظر بگیریم. لذا اگر دقیقاً فرموده باشید من در ضمن مباحث گذشته از یک قاعده صحبت به میان نیاوردم. بلکه تا قواعد متنوعی رو در نظر داشتیم. اما خوب است که ما اینها را با توجه بیشتری مدنظر قرار بدیم با التفات و شفافیت ببینید الان ما یک دست تزاهم در واقع قواعد مربوط به تزاهم بین مسالح داریم یه سری قواعد رو ما می توانیم مربوط به تزاهم بین مفاسد محسوب کنیم یک سری از قواعد مربوط به اهم و مهم مربوط به تضامنه مسائل و مفاسده در واقع اهم و مهم اگر بخوا قاعده محسوب بشه یک قاعده باید قاعده عام حسابش کنیم در واقع اگر اهم و مهم به عنوان قاعده مستقل و واحد تلقیشه موارد مرتبطه با اون رو ما باید تعیین تکلیف کنیم به چه صورت به این صورت که یا یا باید اون موارد رو از قواعد فرعی قاعده اهم و مهم محسوب کنیم و اینها رو زیل اون تعریف کنیم خب این به چه مناس یعنی قا... یک قاعده اصلی داریم در, در واقع اه... اه... به تعبیر دیگه اه... اگر ما اه... اه... خلاصه بخوایم اینها رو بازنگری کنیم این فرض های مختلفی وجود هست یک فرض اینه که اه... یه قاعده اصلی داشته باشین قاعده اهم و مهم قاعده اصلی محسوب بشه و دیگر موارد رو ما از قواعد فرعی اون قاعده اصلی حساب کنیم پس این یه تلقی فرض دو... یک فرض فرض دوم این که عنوان اهم مهم مسادیق در واقع دارای مسادیق متنوعی محسوب بشه به تعبیر دیگه قاعده اهم مهم مسادیق مختلفی در در میان خلاصه موارد مختلف پیدا بکنه اینها در صورت مسادی خواهند بود به و در واقع قاعده, قاعده اهم و مهم یک قاعده کلی خواهد بود خب اون مفهوم اضافی بودن رو ما لحاظ بکنیم دوستان صدا دارند. قاعده اهم مهم به عنوان یک قاعده کلان محسوب شد و مسادیق اون به مسابه در واقع موارد دیگه به مسابه مسادیق اون قاعده تلقی بشند خب این هم یه تصویری خب در هر حال ما با مجموعه ای از قواعد اینجا مواجهیم در هر حال تک قاعده نیست در ارتباط با قاعده با اون با دو عنوانه اهم مهم می توانیم مجموعه از قواعد رو شناسایی کنیم خب یه سری قواعد مربوط به چی در واقع یه سری قواعد مربوط به تضاحم بین مسائل و مفاسد هستن یه سری قواعد مربوط به تضاحم بین مفاسد ان یه سری قواعد مربوط به تضاهمه بینه مساله و مفاسد خب پس ما بهتره که چکار کنیم ای اینها رو یه ببریم تو چارچوب لیستی از قواعد رو ما داشته باشیم با حالا هر تقریری که میخواید بگیم اونا قواعد فرعی هست اما مهم یه قاعده است اونها مرتبط بینن فرعی اینن چون بعضی قواعد قواعد فرعی تلقی میشن حالا اون رو یه مقداری با شما تعامل بفرمایید می توانی این اشکال نداره که ما بگیم یک موجود در هر حال مجموعه قواعد هستن این ق... اینها قواعد فرعی هستند در واقع ما اگر این فرض اول رو قبول بکنیم به این صورت خواهد بود که ما مطابق خلاصه مطابق مشی رایج در مباحث قاعد سازی مباحث قواعد ما آمدیم چه چیکار کردیم عمل کردیم و و مجموعه از قواعد رو که فراتر از فروع استند فقهی اینها محدوده تنگتری دارند در واقع اینها شناسایی شدند که دایره محدودتری رو شامل می شوند اما چرا بهشون می گیم قاعده به لحاظ در واقع گستره اونها گستره وسیع مسادیق فراتر از در واقع فرع فقهی تلقی می شوند به تعبیر دیگه قواعد می توانند اه، اه، صورت نسبی تلقی بشن قوائد به صورت نسبی میتوانند نسبت به یکدیگر مقایسه بشن بعضی فروه او یکی حساب بشن منطقه نه عنوان عنوان فقهی اه در این صورت ما میتوانیم بگیم که برخی قوائد دایره محدود دارند خب اگر قاعده اهم و مهم رو با دایره خیلی وسیع ما در نظر بگیریم این قواعد قواعد می توانند در واقع قواعد فرعی مربوط به این قاعده دایره تنگتری رو شامل خواهند شد و نسبت به مصاد نسبت به بالائی یعنی قاعده اهم و مهم محدودیت دارند اما نسبت به اون فروعاد در واقع دائره تنگ از مصادیق رو شامل خواهند شد و میتوانند بر فرو اما میتوانند بر در فروات مختلف فقهی مورد تمسک و عمل قرار بگیرند این عمل هم می تواند توسط مک... عموم مکلفان انجام بگیره در واقع تطبیق این قواعد به دسته یک نفر نیست تطبیق این قواعد قواعدی که به مسابق قواعد فرعی هستند هم میتواند توسط عموم مکلفان انجام شه و هم میتواند توسط مجتهد مورد تمسک و تطبیق در مباحث فقهی قرار بگیره خود مکلف خود مجتهد مانند دیگران مکلف اون بحثش جدا اما در مباعث مختلف میتوانه این رو دخالت بده اما اگه این فرض اول شد که ما این قواعدی که الان میخوایم لیستش رو مقبر جسته کنیم اینها به عنوان در واقع قواعد فرعی محسوب بشن و نه در مقابل اون قواعده اصلی قواعده اهم و مهم قواعده اصلی باشه اینها ها فروعات اون خب این مشکلی رو ایجاد نمی کنه. اما فرض دوم چیه؟ فرض دوم این بود که خودش یه تقاعده باشه اینا مصادیق باشند در واقع یک فرض این فرض دومه که متفاوته خب در این صورت در واقع در این صورت قواعد مزبور قواعدی که به عنوان قواعد فرعی تلقی میشند به عنوان در واقع فروع فقهی باید تلقی بشند خب در بنابراین نمیتوان این رو بپسندیم این جهت نمیتوان اینها رو خلاصه از سنخ در واقع مصادیق قاعده گرفت قاعده اهم و مهم گرفت به معنای نزدیک میشه اما چون که اونها رو به عنوان صرفا یه فروع فقهی تلقی میکنه یه مقداری بحث رو از قاعده بودن میاندازه خب در هر دو صورت ما مجموعی از قواعد رو باید داشته باشیم اما این دومی دیگه از قاعده بودن میاندازه در مجموع میتوان گفت که خلاصه اون فرض اول فرض نخست مناسب‌تره و بر اساس اون ما مجموعه ای از قواعد مرتبط با اهم و مهم داریم قواعد رو می توانیم شناسایی کنیم که زیل قاعده اصلی اهم مهم مورد شناسایی قرار بگیرند و نقشافرینی کنند. خب این نکته در مجموع ما رو کمک میکنه که خلاصه اینها رو به دستبندی کنیم اما این قواعد بدونه دستبندی خلاصه شلوغن و یه وضعیت ابهام‌آمیزی دارن ما لا به بعضی از اون قواعد رو استفاده کردیم به صورت مناسب این جایگاه خود رو پیدا نمی‌کنن در واقع باید ما برای اینکه جایگاه مناسب اونها رو خلاصه پیدا کنیم و اونها رو تصویر کنیم باید یه دستبندی میکنیم اون دستبندی که قبلا ما داشتیم خلاصه کمک میکنه که اون جایگاه مناسب رو در تحلیل ما خلاصه پیدا بکنند از این رو ما این رو میبنیم تو قاعده خب حالا به یکی یکی پس ما لیست میکنیم بعضیش هم زمن کار توضیح اجمالی در پیدا شد از جمله در اون الگوی که ما در تفسیر اون دیدگاه آقای سوسوبه میگفتیم هر کدوم از اون فقرات به من اونا قاعدن من تو ما اونجا به عنوان قاعده بودنشون کار نداشتیم میخواستیم اینها رو اون سیر اون نظم رو بفهمیم خب موارد زیادی ما داریم در این بحث مساله اگر دو مسلحت این مسالهی ای که ما اینجا میگیم مسلحت فعلا یعنی یک فعل، در واقع مسائل به مسابقه افعالی در واقع مرتبط با افعالی هستند و به اونها خلاصه تعلق دارند مسائل به افعالی تعلق دارند که مختزی در واقع شکل گیری و جعل احکام الهی شدند خب این مساله پس مربوط به فعلا در واقع اینو به خاطر داریم که این مساله فعلا از این چه استفاده میخوام بکنم یک استفاده دوگانه ما گاهی مفهوم مفهومه سال و اصله رو به کار میبریم مرضون اشخاص سال و اصله هند بنابراین در این بحث ابتدا در واقع توجه ما به چیه به افعالی است که میبایست در قالب یعنی وقتی میگیم مهم اهم و مهم در قالب دو فعل صالح و اصلح مورد توجه قرار گیرند نظام یه قاعده ما داریم به عنوان قاعده در واقع قاعده تقدیم فعل اصلح بر فعل صالح خب در توضیح این این قاعده ما این رو عرض کردیم که چی باید توجه به این داشت که خلاصه اون متعلق فعله بنابراین ما قواعدی که میخوایم مطرح کنیم یا مقداری از این زاویه باید در نظر بگیریم اما مصداقن این قاعده خودش چیه خودش در زمره افعال خاصه قواعد خاصه پس این یه قاعده این قاعده بیانگر چیه این قاعده تقدیم فعل در حال ما بیان اینطوری با فعل آوردید در واقع تقدیم الاصلح الا الصالح تقدیم اصلح این مختزیه چیه در واقع شما ببینید کدام سو فعل اصلح این قاعده بیانگر چیه بیانگر اینی که از میان دو فعل, دو فعل دارای در واقع برخوردار از صلاحیت و مصلحت باید فعلی که اصلح است بر دیگری مقدم شود این بیان شفافیه عنوانش تقدیم اصلح منطقه شبیه این رو در واقع ما بگیم اسمش قاعده تقدیم اصلح تو افعال کمتر به کار میره بیشتر مثلا این تعبیر در لذا من در توضیح شوردم تقدیم فعل اصلح بر فعل صالح که اون در واقع باید تقدیم فرد اصلح بر فرد صالح رو اون رو تحلیل کنیم اون به اون سوال الان اگر بخوایم ما در نظر بگیریم ببینیم اون چیه سوال تقدیم فرد اصلح بر فرد صالح چه نسبتی با مقوله تضاحم تضاحم داره می توانیم اینجوری پاسخ بدیم یعنی ما الان فعلی که انجام میدیم ساله فعل بعدیم صه میخوایم ببینیم در دوران بین اینها در واقع در دوران بین دو فعلی که هر دو دارای مصلحت هستند آیا باید به یکی رو مقدم کرد باید فعلی که اصله بر دیگری مقدم بشه؟ چرا؟ چون که گفتیم تظهمه؟ ما یه فعل رو بیشتر نمیتوانیم انجام بدیم فرض تضاهم خلاصه مبتنی بر اینه که ناتوانی داریم این ناتوانی یا کم توانی نسبت به انجام دو فعل متضاهم فرض تضاهم پیش فرض همه موارد پیش همه مسادیق تزاهمه است این یه نکته کلیدیه خب حالا در تقدیم فرد اصله بر فرد صالح مثلا در انتخابات ما این رو می‌خوایم این فرد رو اون فرد مقدم کنیم یه موقع گفته میشه اگر تقدیم اصل فرد اصله در یه صورتی در صورت های مختلفه بگیم در صورتی که تقدیم فرد اصلح در افراد صالح واجب و ضروری باشه اینجا فعلی به عنوان تقدیم اصلح در واقع به عنوان وظیفه پیش روی ماست چرا؟ چون ما الان یه فعل داریم خود تقدیم اصلا یک فعله دیگه این بحث تضاهم نیست در واقع تقدیم در واقع تقدیم صالح فعلی نیست که در واقع وظیفه ما باشه در این صورت به تعبیر دیگه این دوتا دوتا فعل رقیب همان تضاهم نیست وظیفه ما اون تقدیم اسلحه اگر این فرض باشه ما در واقع یک فعل وظیفه نداریم در خلاف فر... پیش فرض تزاهم که هر دو فعل بر ما وجوب دارند در واقع امتصال اونها باید انجام بگیره این ضروری و واجبه اما اگر تقدیم سا اصلح واجب نباشه در صورتی که تقدیم فرد اصلح واجب نباشه دوستان ببخشی سر کلاس هم سمتون سر کلاس هم ببخشی تا سه اونیم ببخشی سر کلاس هم ببخشی ببخشی دوستان خدمش شما مرز کنم تقدیم فرد ساله در واقع واجب نباشه بلکه چی بلکه از به عنوان در واقع انتخاب اصلح از مصادیق انتخاب ساله واجب باشه. تقدیم فرد اصلح بر فرد صالح واجب نباشه بلکه چی باشه انتخاب اصلح مانند دیگر مصادیق صالحان باشه و صرفا در واقع در کنار اونها محسوب بشه از مصادیق انتصاب صرفا به این عنوان واجب باشه که از مصادیق انتخاب صالح هست این هم یک فرضه در این صورت ای ای ای ای اینجا دیگه متفاوت میشه اونجا الان تزا پیش فرضه تضاهم شکل نگرفت خب اینجا الان یک گزینه از چند گزینه است در این صورت فرد اصلح در عرض دیگر افراد خواهد بود و مکلف میتواند هر مصداقی رو انتخاب کند خب درست تعداد گزینه داریم از میان مصادیق مختلف سالحان یکی رو انتخاب کنه هر مصداقی رو میتوان انتخاب کنه خب پس درسته تعدد مصداقه در این صورت تعدد مصداق مستلزم ترجیح نبود حالا ما الان نبگیم کدام درسته ها ما میخوایم ببینی اصلا ربطی به تضامن پیدا میکنه یا نه پس بو گذینه شد مستلزم این تعداد مصلاق سالحان در مقص انتخاب یک فرد از میان اونها خلاصی گذ... آور نبود مستلزم ترجیح ضروری و واجب فرض نشده بود بنابراین این ربطی به پیدا نمیکنه به تعبیر دیگه ما اصلا از دایره این, این فرض از دایره امور تضاهمی خارجه خب پس کار نداریم بعد یه فعل بیشتر نداریم این دکتر هم خیلی مهمه ما در فرض تضاهم دو فعل واجب داشتیم در این صورت دو فعل واجب در عرض یک دیگه نداریم که در واقع که تا مختزی بحث از تضاهم باشه و مستاقیابی برای خلاصه فرد ارجح بکنیم برای در واقع اصلح بکنیم اصلا اینجا بحث تزاهم نبود بنابراین در این مورد در این دو فرض ما اصلا خارج از در این بحث تزاهم شدیم چرا چون که یک فعل یک فعل بیشتر نداریم از اونورم خلاصه بحث افراد در عرض یک دیگه اصلا قرار نبود توی فرض دوم انتخاب بشه خب این بحث کمک کرد که یه مقداری ما از بحث شخص بریم کنار اگر شما بید بگید دو تا فعل واجب داریم بله اون یه بحثی دیگه هست بحث, بحث مشابه مفهوم بحث مشابهت داشت به رقم مشابهت بین دو ترجیح اصلح در واقع ترجیح در واقع گزینش فرد اصلح ربطی به مقوله تزاهم نداره اون یه واجب بیشتر نداریم یا واجب اینه که ما طبق فرض اول حتما باید اصلح رو در واقع ترجیح بدیم وجوب ترجیح شناسایی اصلح گذینش اصلح این یه فرز بود اون دومی عدم وجوب بود عدم وجوب گزینش اصلا اکتفا به صالح خب طبیعتاً یک گزینه ما چاره نداریم اما اون یک گزینه بودن به معنا نیست که اون تضاهم اگه تضاهم بگیم یه جور دیگه است بنابراین مفهوم تضاهم به این معنی که ما در بحث داشتیم ربطی به مقوله‌ی تضاهم در افعال و تکالیف ندارد دو فعل در واقع دو فعل دو فعل واجب نداریم بله اون بحث ویژگی ولو اینکه هر چند از ما از ضرورت ترجیح فرد اصلح در فرد صالح و به طریق اولا ترجیح او بر غیر ساله این خلاصه صحبت جاداره بکنیم و صحبت درستیست است و میتیم از اون خلاصه صحبت بکنیم و اون رو مطرح کنیم و بحث فقهیش هم مطرح کنیم. مسئله مستقل و مهمی است. اون سر جای خود. اما این از سنخ تضاهم ما نشد پس برگردیم الان قواعد مربوط به تضاهم مسئله این یک مورد این روی توضیح دادیم پس اجمالا توضیح ما برمیگرده به این که ما فردی رو چکار کنیم ببخشید فعلی رو بخوایم مقدم کنیم این میشه خودش تقدیم فعل اصلح بر فعل ساله. حالا ممکنه شما اصلا بیاد بگید که این واجب نیست او یه بحث دیگه است که ما چه کار کنیم آیا اصلا تضاهم اینجا رو قبول کنیم نکنیم تقدیم فعل اصلح واجب واجب نیست این یه بحث مستقلیه که آیا فعل اگر یک فعل اصلح بود یک فعل صالح خب این دو مصادیق مختلف داره همه جاهایی که گفل وجوبیان از مصادیق این خواهند بود در واقع تضاهم مربوط به همه افعال واجب رو میتوان از مصادیق این قاعده بلیسه محسوب کرد به تحال اگه تضاهم نگیم در واقع راه چاره برای رفع تضاهم مربوط به همه افعال واجب مربوط به این قسمه پس کم مساقم نیست دو کار خوبه یکی واجبه یکی اوجبه در واقع چنان که واجب و اوجب حکایت از مقایسه همه اموری میکنه کچیه در واقع این دو مفهوم میگن آقا. یکی باید مقدم بشه اسمان رو میذاریم اوجب یکی از اونها باید مقدم بشه خب این لذا اسم یکی رو اوجب میذاریم و از این مرگوله صحبت میکنیم خب این یک قاعده خب یه تحبیر دیگه ما داریم که البته از فرض تزاهم خارجه ولی مربوط به اینجاست قاعده مرتبطه اون چیه؟ دو تا قاعده یکی بگیم الجمعو بین المسلحتین اولامن ابتال احد ما این یه تحبیریه پس یه جاهای ما قواعد مرتبط داریم این قاعده اصلی در واقع ساله و اصله بود فهمتا مراد ما فعل اصل تعبیر دیگه چی؟ پس اینجا تعابیر دیگه هم توانیم داشته باشیم حالا قبل از ورود به موارد دیگه سیغ تعبیری خاصی ما اینجا میتوانیم داشته باشیم یکی چی؟ وجوبه یا لابدیت تقدیم اوجب اصلا همین که اوجب است تقدیم الوجب خودش یه تعبیریه علل واجب این دیگه اصلا روشنه این قدر بدیهیه که ما دیگه کار باهاش نداریم یه سری سیقه مرتبط با این می توانیم داشته باشیم مثل این سیقه ببخشید این توابیر قواعد مرتبط قواعد مرتبط با این اهم و مهمی که در اصله و صالحه الجمعو بین المسلحتین اولا من ابتال احد ما خود این ارتا سیاق مختلفی داره داره میگه که اگر دوتا مسلحت امکان داره جمعشون کنیم خب جمع کنیم اولا بلکه به یک من اصلا جایز نیست این قواعده چیکار میکنه؟ این قاعده متکی بر امکان در واقع متکی بر عدم شکلگیری تظاهم است اما به لحاظ مقایسه در واقع مقایسه دو حکم و دو حکم یا مسلحت خب دو فعل میتوانند با هم جمع بشن خوب. این دو فعل دارای مسلحت که امکان جمع بین آنها هست در واقع از این جهت به قاعده در واقع به قواعد مربوط به در واقع تضاحم مصالح مرتبه و خب مرتبط باشه ولی اله خودش بیانگر تضاهم خیر در واقع مفهوم جمع در این قاعده مفهوم جمع و امکان اون در این قاعده متکی بر اینه که متکی و بیانگر عدم شکگیری تضاهم در این مورد اما به هر حال باید توجه به اون شکل بگیرید تذکر داده بشه که آقا اگر می توانیم جمع کنیم نباید یکی رو ترک کنیم دوستان اگر رو دارید یه پیامی بدید بله جای لنگرین فعلا صدارو داره شد قاعده ی دیگه که مرتبط با مقوله تزاهامه در تزاهامه بین دو مثلت قاعده تخییر بین دو مسئله مصادی است خب روشنه که این قاعده از قواعد مرتبط و هیچه را که هیده بحثش به اینجا نمیخوره این معنی قاعده در دو فرق میتوان مطرح بشه که در هر دو خلاصه این ارتباط صرف ارتباطه و از خارج که هر دو صرفاً به ما مورد بحث ما نزدیکند و جزء اون نیستند و از مصادیق اون نیستند یکی فرض تصاویه خلاصه مساله فرض تصا... تصاوی مساله خودشی یه است ما به دست میاریم در مواردی که تصاوی مساله برای ما احراز شده است خب این احراز یا اثبات شده بگیم در این صورت حکمی که بالا اینجا وجود داره حکمی که بیان میکنه تاخیره مورد دوم چیه؟ فرض عدم عدم شنا... در واقع شناخت میزان مسلهه در این صورت این قاعده میتوانم در اینجا هم به کار بره در هر دو صورت از قواعد تزامم میان مساله خارج از مربوط به بحث ما نیست اما با اون ارتباط داره از قواعد مرتبه عالم